شاگرد، بغداد، رمضان 639 پس از آن که قاضی القضا و اعوان و انصارش را تادم در مشایعت کردم به اتاق برگشتم تا ظرفهای کسیف را جمع کنم یک دفعه دیدم بابا زمان و درویش آواره همانطور خوشکشان زده حتی یک کلمه هم از دهانشان در نمی آمد. زیر چشمی هر دوشان را پاییدم. یعنی می شود بدون حرف زدن صحبت کرد؟ از روی کنجکاوی سرم را توی اتاق به کاری گرم کردم. مخده ها را صاف کردم، اتاق را جمع و جور کردم. خورده های نان را یکی یکی از روی قالی جمع کردم. اما پس از چند دقیقه دیگر بحانی برای ماندن در اتاق نمانده بود. به اجبار آنها را همانطور گذاشتم و از اتاق بیرون آمدم. سلانه سلانه وارد مطبخ شدم. آشچی دده زالم تا چشمش به من افتاد شروع کرد چپ و دستور دادن. کجا بودی شاگرد تمبل؟ زود پیشخان را دستمال بکش، زمین را جارو کن، زرفها را بشور، اجاق را تمیز کن، دوده و چربی روی دیوارها را پاک کن. کارت که تمام شد سری هم به تله موشها بزن. توی انباری موش دیدم اندازه بچه گربه، زود برو بگیرش حیوان بی خاصیت را. وگرنه تو را به جای پنیر میگذارم لاینان حدود شش ماه از آمدنم به این خانقاه گذشته اما از همان روز اول آشچی دده دمار از روزگارم درآورده. مرتب برایم نطق می کند. تمیزی عبادت است عبادت تمیزی است آدم بیرحمی است مثل سگ از من کار میکشد خوب میشد اگر میفهمیدم چرا اسم این شکنجه را گذاشتهاند تربیت معنوی در کجای شستن بشخاب های چرب و ساییدن کف زمین ممکن است معنویت باشد یک روز از بس زله شده بودم جوابش را دادم و گفتم اگر تمیزی عبادت بود همه زنهای خانه‌دار بغداد خیلی وقت پیش به رتبه مرشدی رسیده بودند. آشچی دده یک قاشق چوبی به طرف کلام پرت کرد و با صدای بلند فریاد زد: مرا نگاه کن. اگر می‌خواهی درویش بشوی، باید مثل این قاشق چوبی ساکت باشی. زبان درازی صفات مرید ها نیست کم حرف بزن تا زود پخته شوی از دستش هرس می‌خوردم اما خیلی هم می‌ترسیدم از آشچی دده حتی یک بار هم حرفش را زمین نینداخته بودم یعنی تا امشب این بار همین که آشچی دده پشتش را به من کرد از مطبخ زدم به چاک پاورچین پاورچین به اتاقی که مهمان در آن بود نزدیک شدم خیلی دلم میخواست این درویش را که یک دفعه سر و پیدا شده بود بشناسم کی بود چه کاره بود گلندری بود اینجا دنبال چه میگشت؟ به بقیه درویش های خانقا اصلا شبیه نبود در چشمهایش نوعی نگاه سرکش بود زنده، آسی و بیباک حتی موقعی که از فروتنی سرش را خم می کرد این نگاه از میان نمی رفت. حالتش چنان شورشی و چنان قریزی بود که آدم هم اسیر جادویش می شد هم از وجودش به واهمه میافتاد به اتاق که رسیدم دیدم در بسته است از سوراخ در نگاه کردم اولش چیزی ندیدم اما چشمم که به تاریکی عادت کرد توانستم صورت کسانی را که توی اتاق بودند تشخیص بدهم کمی بعد بابا زمان از شمس پرسید حالا تعریف کن گزارت چطور به بغداد افتاد نکند این وضعیت را در خواب دیده ای درویش سرش را تکان داد نه در خواب ندیدم راستش من اصلا خواب نمی بینم بابا زمان مهربانانه گفت همه خواب می بینند، اما بسی ها یادشان نمی اینکه یادت نمی ماند، به این معنا نیست که خواب نمیبینی. شمس تکرار کرد اما من خواب نمیبینم. بخشی از قول و قراری است که با خدا گذاشتم در کودکی شاهد آن بودم که بعضی اسرار کائنات یکی یکی پیش چشمانم آشکار می‌شود موضوع را به پدر و مادرم گفتم اما آنها خوششان نیامد و گفتند خیالاتی شدی گفتم رازم را با دوستانم در میان بگذارم اما آنها هم گفتند یا خیالاتی یا دروغگو با معلمهایم مشورت کردم اما عکس العمل آنها هم فرقی با بقیه نداشت سرانجام فهمیدم آدمیزاد وقتی حرفی درباره حالتی خارق العاده میشنود میگوید یا خیال است یا رویا و از آن میگذرد درویش تا این را گفت انگار صدایی شنیده باشد یک دفعه سکوت کرد بعد اتفاق عجیبی افتاد ایستاد کمرش را راست کرد آرام آرام طوری که انگار میداند به کجا باید برود، به طرف در شرخید و به طرف من آمد. در تمام این مدت هم مدام به جایی که من ایستاده بودم نگاه میکرد. انگار به شکلی فهمیده بود من آنجا هستم و مخفیانه نگاهشان می کنم. انگار می توانست پشت در چوبی را ببیند. قلبم مثل قلب گنجشک میزد لحظه به سرم زد فرار کنم و به مطبخ بروم. اما دستهایم پاهایم تمام بدنم سر شده بود. نگاه های سیاه شمس تبریزی در را سوراخ می کرد و به فراسوی آن میرفت. ترسیده بودم. اما در عین حال نیروی عظیم. همه زرات وجودم را پر میکرد. کرد شمس نزدیک شد دستش را به طرف دستگیره در دراز کرد اما درست همان موقع که می توانست در را باز کند و مچ مرا همانجا بگیرد ایستاد آنقدر نزدیک شده بود که نگاه کردن از سوراخ در هم دیگر فایده نداشت نمی توانستم صورتش را ببینم، آنطور منتظر ماندن به نظرم مثل عذاب قبر آمد، نفسم را حبس کردم و همانطور ماندم، در همان حال بودم که شمس باز دوباره همانطور ناگهانی چرخید و از در دور شد و در همان حال حکایتش را ادامه داد. سرانجام از خدا خواستم که دیگر خواب نبینم اینطوری دیگر هر وقت با نشانهای روبرو شدم یا برای کشف به عالم دیگر میرفتم مطمئن بودم که خواب و رویا نمی بینم. خدا خواستم را پذیرفت فرشته رؤیا را از من گرفت. برای همین است که اصلا خواب نمی بینم. شمس الان طرف دیگر اتاق بود. جلو پنجره که باز بود ایستاده بود. بیرون نمنم باران می آمد. در فکر به باران نگاه کرد و گفت خدا فرشته خواب دیدن را از من گرفت اما در عوض این کم بود اجازه داد خوابهای دیگران را تعبیر کنم. با خود گفتم بابا زمان این چرت و را باور نمی کند. گمان کردم او را هم مثل من که همیشه سرزنشم می کند سرزنش خواهد کرد. اما مرشد با ادب و نزاکت سرش را خم کرد و گفت به شخصیتی خارق العاده می بگو ببینم چه کاری می توانیم برایت انجام دهیم؟ نمیدانم راستش منتظر بودم شما جواب این سوال را به من بدهید. بابا زمان پرسید: من چیست؟ به نظر گیج شده بود. حدود چهل سال است درویشم همه نو چرنده و پرنده و درنده را می شناسم. اگر مجبور شوم مثل حیوان بیابان می جنگم اما باعث زحمت کسی نمی برشهای برش های آسمان و قاررش جنگل و علف صحرا و ماهی های دریا را میتوانم نوع به نوع بشمرم. انسان را که خدا به صورت خودش آفریده میتوانم بخانم مثل کتابی مبین. شمس مدتی لب فرو بست منتظر ماند تا مرشد چراغ را روشن کند، بعد حرفش را ادامه داد، زیرا یکی از قواعد چهلگانه است، قاعده چهارم، صفات خدا را می توانی در هر ذره کائنات بیابی، چون او نه در مسجد و کلیسا و دیر و صومعه بلکه هر آن همه جا هست. همانطور که کسی نیست که او را دیده و زنده مانده باشد، کسی هم نیست که او را دیده و مرده باشد. هر که او را بیابد تا ابد نزدش میماند. در کورسوی لرزان چراغ قامت شمس تبریزی انگار بلندتر شده بود گیسوانش موج در موج روی شانههایش ریخته بود اما علم لدنی اگر به جایی جاری نشود به آب تلخی میماند که ته گلدان جمع می شود به درگاه خدا بسیار دعا کردم رفیق همرازی نصیبم سازد تا علمی را که درونم انباشته شده باغو قسمت کنم آخرین بار در کاروان سرایی نزدیک سمرقند رازی در گوشم زمزمه شد گفتند برای تجلی سرنوشتت به بغداد برو مطمئنم شما به من خواهید گفت که از این به بعد به کدام جهت باید بروم امروز نشد، فردا. شب شده بود. ماه در آمده بود. محتاب از پنجره به داخل میتابید. متوجه شدم خیلی دیر شده. حتما آشچیدده دده دنبالم میگشت. اما برایم مهم نبود. دوست داشتم یک بار هم که شده قواعد را زیر پا بگذارم. بابا زمان زیر لب گفت، نمیدانم منتظر هستی جور جوابی بدهم، اما اگر آگاهی هست که من باید به تو بدهم، لابد زمانش که برسد همانطور هم می شود، تا آن زمان می توانی پیش ما بمانی، مهمانمان باش. شمس با احترام خم شد و دست بابا زمان را بوسید. درست همان موقع مرشدم آن سوال عجیب را پرسید. میگویی آماده ای همه علمت را به یکی دیگر منتقل کنی. میخواهی اندوخته را که به جواهر میماند در دست بگیری و به کسی هدیه کنی. اما قلب دیگری را به نور معنویات سوزاندن بهایی دارد. در عوضش چه می توانی بدهی؟ تا عمر دارم جواب درویش را فراموش نخواهم کرد. ایستاد معدبانه و آرام گفت سرم را حاضرم در عوضش سرم را بدهم. عرق سرد بر تیره پشتم نشست. تکانی خوردم و خودم را عقب کشیدم. وقتی دوباره چشمم را به سوراخ در نزدیک کردم، دیدم مرشد من هم جا خورده. بابا زمان آه کشید. برای امروز همینقدر صحبت کافی است. خسته ای، بگذار این شاگرد موقرمز را صدا کنم، رخت خوابت را نشانت دهد و برای ملافه تمیز و شیر بیاورد. شمس این حرف را شنید دوباره به در نگاه کرد نگاههایش را باز تا استخوان‌هایم حس کردم. انگار دیوارها را سوراخ میکرد و میگذشت. نه فقط آن سوی در بلکه عمیقترین و پنهانترین حالت‌های روحم را می‌کاوید و رازهایی را می یافت که حتی بر خودم پوشیده بودم ترس وجودم را فرا گرفت. شاید هم جادوی سیاه می دانست. انگار هاروت و ماروت دو فرشته مشهور بابل که قرآن کریم میگوید از آنها بپرهیزید به شمس تبریزی آموزش داده بودند. یا اینکه فن دیگری بلد بود و می توانست آن سوی دیوارها را ببیند. به هر حال مرا که می ترساند. شمس گفت لازم نیست شاگرد مو قرمز را صدا کنیم. حسی درونی به من می گوید، او همین نزدیکی هاست و به حرفهای من گوش می کند. از شگفتی صدایی غیر ارادی از دهانم درآمد. دستپارچه پا شدم و به طرف باغچه دویدم. نگو آنجا هم بلایی که اصلاً حدسش را نمی زدم منتظرم بود. آشچی دده آشچی دده فریاد زد. ای بی سر و پا پس اینجایی؟ بعد با جاروی دستدار دنبالم کرد. توی بد درد سری افتاده ای پدرت را در می آورم. بیا اینجا. در لحظه آخر جا خالی دادم و مثل برقباد از باغچه فرار کردم. وقتی با تمام نیرو در کوره راهی میدویدم که خانقاه را به شاهراه متصل می کرد، صورت شمس تبریزی از جلو چشم محو نمیشد. از کجا فهمیده بود به حرفهایشان گوش می‌کنم؟ مگر این مرد جادوگر بود؟ حتی وقتی فرسنگ ها دور شده بودم، ایستادن به کنار حتی نتوانستم یواشتر بدوم. قلبم انگار میخواست از دهانم بیرون بزند، لب و زبانم خشک شده بود، تا زمانی که از پا بیفتم و نفسم بند بیاید، دویدم، دویدم.